زمائم فصل پنجام ارتشی که اروپا را حیرت زده کرد اروپاییان مغولان را وحشیانی تصور می که صرفاً به اتکای شمار زیادشان به هر چیزی بر سر راه خود حمله می کنند. ولی اچی ویلز در جلد دوم کتاب کلیات تاریخ جهان خاطر نشان کرده است که برجستگی ارتش مغول تا اصرا حاضر به طور کامل درک نشده است تنها در دوران اخیر است که اروپا درک این نکتر را آغاز کرده است که پیروزی های ارتش مغول در بهار سال 1241 میلادی که به تاخت و تاز در لهستان و تصرف مجارستان منجر گردید به واسطه انجام تدبیر جنگی بوده است. نه صرفاً به دلیل برتری فوقلاده نفرات. اما این حقیقت هنوز جنبه اطلاعی عمومی پیدا نکرده است. هنوز عقیده آمیانهی متداول است که تاتارها همان را، به صورت گروهی وحشی جلوه میدهد گروهی که هر آنچه در مقابلشان بود تنها به واسطه کسرت عددی خود تارندند بدون نقشهی جنگی چهار نل به اروپای شرقی تاختند به تمام موانه حمله بردند و تنها با زور آنها را از میان برداشتند اما شگفتاور است که نقشه های فرماندهان مغل در عملیاتی که از رود ویستول صفلا تا ترانسیلوانی گسترش داشت به موقع و به نحوی نتیجه بخش انجام میشد چون این عملیاتی کاملا فراتر از قدرت هر ارتش اروپایی در آن زمان و فراتر از بینش هر فرمانده ی اروپایی بود از آن زمان تا دوران فردریک دوم هیچ سرداری در آروپا نبود که از لحاظ تدبیر نظامی در مقایسه با اوگتای یک غیر حرفه‌ای نبوده باشد همچنین باید در نظر گرفت که مغولان با اطلاع کامل از اوضاع سیاسی مجارستان و وضعیت لهستان دست به آن اقدام متحوران زدند مغلان توجه داشتند که به وسیله تشکیلات کاملا سازمان یافتهی از جاسوسان به اطلاعات دست یابند از طرف دیگر مجارها و قدرتهای مسیحی مانند بدویانی خورد به زحمت چیزی درباره دشمنان خود می دانستند. سفر ویلیام روبروک ویلیام روبروک راهب طی سفرهای خود در میان مغلان از سال 1253 تا 1255 میلادی برای کسانی که با آنها روبرو شد از جمعه منگوغاان به مععزه دین مسیحی پرداخت روبروک راهب شرح مفصلی از سفر خود نگاشته است که در کتاب معموریتی به آسیا به تدوین کریستوفر داوسون بار دیگر منتشر شده است هنگامی که ما به میان آن وحشیان رسیدیم چنان که قبلا گفتم، به نظرم رسید که گویی در حال قدم گذاشتن به دنیای دیگری هستم. زیرا آنها پس از آنکه وادارمان کردند مدتی طولانی در سایه گاری هایمان بنشینیم به صورت سواره ما را احاطه کردند. اولین سوالشان این بود که آیا قبلا در میان آنها بوده این یا نه. آنها با شنیدن پاسخ نه گستاخانه شروع کردند به مطالبه قسمتی از آضووق ما. ما قسمتی از بیسکویت ها و شرابی را که با خود از شهر آورده بودیم به آنها دادیم و هنگامی که آنها یک سبو شراب نوشیدند سبوی دیگری را خواستند و گفتند که یک مرد با یک پا وارد یک خانه نمیشود. آن را به آنها دادیم و عذرخواهی کردیم که کم داریم. سپس جویا شدند که از کجا آمده این و می خواهیم به کجا برویم؟ من به زبانی که قبلا سخن گفته بودم با آنها صحبت کردم و گفتم. که ما در مورد سرتاش یک رهبر شنیده ایم که است و من مایلم به نزد او بروم زیرا باید نامه مافغم را به او تحویل دهم. سپس آنها با جدیت جویا شدند که آیا من دارم به خاست خود میروم یا فرستاده شده ام. پاسخ دادم که هیچ کس مرا مجبور برفتن نکرده است و من اگر نمیخواستم نمیرفتم. بنابراین من به خاست آزادانه خود و همچنین خواست مافق خود می رویم. بسیار مراقب بودم که هرگز نگویم که سفیر لوی نهم هستم سپس آنها پرسیدند که در گاری ها چیست آیا طلا نقره یا لباس های گرامبه که دارم برای سرتاش می برم. درست است که آنها هیچ چیز را به زور نمی گیرند اما هرچی را که می بینند به بدترین و گستاخانه ترین شیوه مطالبه می کنند و اگر کسی آن چیزها را به آنها بدهد، زیان کرده است زیرا آنها ناسپاسند آنها به نظر خودشان سروران جهانند و معتقدند که هیچ کس نباید از دادن چیزی به آنها خودداری کند اگر کسی چیزی به آنها ندهد و بعد به کمکشان نیازمند شود، با او به بدی رفتار خواهند کرد آنها مقداری از شیر گاو خود را به ما دادند تا بنوشیم از آن شیر کره گرفته شده بود و بسیار شور بود و چیزی بود که آنها آیران همان دوغ می خاندند. به این ترتیب آنها را ترک کردیم و به نظرم رسید که در حقیقت گویی از دست شیاطین فرار کرده هم نامه گویوک به پاپ اینوسان چهار سال 1246 میلادی گویوک خان، جوان نیپلان و کارپینی راهب را با نامهی برای پاپ به اروپا بازگرداند. این نامه در کتاب معموریتی به آسیا که منتخبی از سفرنامه های مبلغان مذهبی به تدوین کریستوفر داوسونه است، ثبت شده است. گویوک خان نوشته است. ما به واسطه قدرت آسمان ابدی خانه علسهای بزرگ هستیم. فرمان ما، این ترجمهی به زبان مسلمانان است. که برای پاپ بزرگ فرستاده شده است و او باید آن که نوشته شده است بداند و بفهمد درخواست مجمعه برگزار شده در سرزمین های امپراتور برای حمایت ما از نمایندگان شما شنیده شد هرگاه او با گزارش خود به نزد تو برسد تو که پاپ بزرگ هستی همراه با همه اومرا شخصا به خدمت ما بیایی در آن وقت من همه فرمانهای یاسارا تفهیم خواهم کرد تو همچنین گفته ای که درخواست و دعا کرده ای که من به شایستگی تعمید داده شوم این دعای تو را نفهمیدم خدای ابدی این سرزمین ها را نابود کرده است و اهاالی آنها را کشته است. زیرا آنها نه هوخواه چندگیز خان و نه هواخواه خاغان بودند که هر دو آنها فرستاده شدهاند تا فرمان خدا را بفهمانند چگونه کسی می توانست برخلاف فرمان خدا و فقط با اتکا به قدرت خود تصرف کند یا بکشد؟ هرچند، تو همچنین گفتی که من باید یک مسیحی نستوری ترسان بشوم، خدا را پرستش کنم و زاهد باشم. تو از کجا می دانی که خدا چه کسی را مورد بخشایش قرار میدهد و در حقیقت به چه کسی بخشش می کند؟ اکنون تو با قلبی صاف باید بگویی. من به تو تسلیم خواهم شد و به تو خدمت خواهم کرد تو خود در پیشا پیش همه امیران به خدمت ما بیا و در انتظار ما بمان در آن موقع تسلیم شما را تصدیق خواهم کرد اگر به فرمان خدا عمل نکنی و اگر فرمان مرا نادیده بگیری تو را دشمن خود خواهم دانست همچنین به تو تفهیم خواهم کرد اگر طور دیگری عمل کنی خدا می داند را که میدانم. قیبگویی از روی استخان سفرنامی روبروک که در کتاب معمولیتی به آسیا به تدبین کریستوفر داوسون منتشر شده است، رسم قیبگویی از روی استخان توسط مغلان را شهر داده است. روشی که به وسیله آن تعیین می که چه اقدامی باید صورت گیرد. سوزاندن استخان شانه حیوانات و لاک لاک پشت برای پیشگویی آینده در چین باستان نیز معمول بود. روبروک غیب از روی استخان را در اقامتگاه منگوغا آن مشاهده کرد. هنگامی که وارد اقامتگاه منگوغا شدیم برده ای در حال خروج بود و تعدادی استخان شانه گوسفند را با خود می برد. استخانها را زغال کرده بودند تا حدی که مانند زغال سیاه شده بودند. در مورد هدف این کار بسیار متحیر شدم و هنگامی که در مورد آن پرسیدم، چندی بعد فهمیدم که خان بدون آنکه ابتدا با این استخانها مشورت کند، هیچ کاری انجام نمی دهد. او تا زمانی که با این استخانها مشورت نکرده باشد، به هیچ کس اجازی ورود به اقامتگاه خود را نمی دهد. این نقعی بیویی به طریق زیر انجام می شود. هنگامی که خان می کاری انجام دهد، فرمان می دهد. تا سه عدد از این استخوان‌ها را پیش از سوزاندن برایش بیاورند خان با در دست گرفتن آنها در مورد کاری که قصد انجام دادنش را دارد فکر می کند تا دریابد که آن را انجام بدهد یا نه سپس استخوان‌ها را به بردی می‌دهد تا آنها را بسوزاند نزدیک منزلگاهی که خان در آن اقامت دارد همیشه دو ساختمان کوچک وجود دارد که استخانها را در آنها می و هر روز این استخانها در سراسر اردوگاه با جدیت مورد استفصار قرار می گیرند. بعد وقتی استخانها تا حد سیاه شدن سوزانده شدند، آنها را به نزد خان برمیگردانند و او بلا فاصله آنها را معاینه می کند تا ببیند در اثر حرارت آتش به صورت تولی در خطی راست شکافتند یا نه. اگر آنها به این صورت شکافته شده باشند راه برای انجام کار او باز است اما اگر ها به صورت افقی ترک خورده باشند یا دانه های گردی از آنها برامده باشد او نباید آن کار را انجام دهد خود استخان یا پوسته روی آن همیشه در آتش ترک می خورد. اگر از سه استخان یکی به صورت خط راست ترک بخورد او کار را انجام می دهد